بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على سيدنا و صلی اللہ علی محمد و آله و محمد و هی اعود بالله من شیفان الرجیم البسم الا فی بدایت البراه و بسم الله الرحمن الرحیم <تصفح> نهایتاً التصدیق و قلب و ولسانن. ما امروز انشالله این قایده بغدادی رو به پایان خواهم برد از فردا وارد مرحله بعدی از این نظامی که داریم خواهم شد انشالله جوز بحث عقاید یا هم واجبات دینی که تا تمام نشده ادامه میده سر از فردا انشاءالله شاء بغدادی نامش رو و تجوید و ترتیب عوض به حد کرد ان شاء کتاب برای تجوید چوب کردن جواب متصفانه نداریم در سایت هست ها کسای که انترنت هم نداریم در داخل کمیتر انشاءالله برایشان داده میشه برای خود یک مسخه اگر پیرنت بگیرین بد نیست اگر پیرنت هم نگرفتیم اشکال نداره همینجا پیاده همونه انشاءالله خب به هر حال بخوانیم وارد تلاوت کریشیم بخوایم قرآن کریم رو تلاوت کنیم قبل از خاندن آیه از آیه های قرآنی لازم است دو کار رو باید انجام داد آداب و تلاوه برای تلاوت آدابی است یعنی عدب است بعضی از ادب ها واجبا هنگامی که مثلا دست به قرآن کریم بخورد واجب است اون که دست به خط قرآن میزنه همراه با تهارت باشد تهارت که میگیم منظور چی است باید داشت یا غسل باید کرد کسی که غسل برش واجبه باید غسل کند و کسی که غسل واجب نیست باید وضوع بگیرد این تهارت هست درست تهارتی تحارت, تحارت که ما مجاز میشیم که دست به قرآن کریم بیجنیم متوجه شدیم؟ آره. خب از جمله آدابش و آداب دیگه ای که گفتاری هم هست بدایتاً یعنی در ابتدای خرایت دو کار رو بود انجام داد یکی الاسطیقاضه، دیگه شن البسمله استعاضه چیست؟ استعاضه به معنی پناف بردن است به خداوند متعال آره هم قلباً و هم است. یعنی کسی که اعوذ بالله من شیطان رجیم میگه باید از دل به خدا پناه ببره از شیطان و همطوره که از قلب و دل به خدا پناه میبرد در زبان هم این جمله رو جاری کند. برسر؟ شاید سوال بشن که این جمله از کجا آمده؟ این جمله از خود فران کریم دستورش آمده جایی که آیه میفرماید وقتی خاص قرآن بخانی فاستعیذ پس استعازه کن یعنی در خدا پناه ببند درست شد؟ لذا این جمله اعوذ بالله من شهید قانه حجیم دستور قرآن کریم ما باید رو انجام بیدیم یعنی میشه گفت قربتن الى الله باید چون کار انجام دار هم قلبن و هم لسانن و زبانن درست شد؟ بعد از بسم... بعد از استعازه نوبت به بسم الله میرسه هر کار بدون بسم الله ابتر هست بسم الله یعنی بسم الله ابتر هست بدون بسم الله چه ابتر یعنی چه یعنی تو یک جای می میادم و آخرش که رسید خراب میشه درسته اونو بهش میگن ابتر به نهایت نمیرسه کاری که به نهایت برسد باید در اولش بسم الله باشد درست, درست خب الا فی بدای تل برا... برا... همین بسم الله را یک جای نباید گفت اون سوره توابه یا سوره برایت هست عوض بالله را گفت ولی بسم الله را نباید گفت چون در اونجا این بسم الله وارد نشده نه تنها وارد که نباید هم گفت حالا چرا نباید گفت اونجا یک زهر دلیل است که انشالله ما شما بعدا وقت به مرحله زبان عربی رسیدیم خواهیم خواند انشالله درست درست آره خب پس در ابتدا بدایتا دو تا کار رو باید انجام داد یک استعازه دو بسماله بسماله بسم الله اگر بگیم همو بسم الله میشیم درست بسم الله بگیم بسم الله درستو خب بعد از بسم وارد تلاوت میشیم فرق نمیکنه این تلاوت ما ترتیلی باشه یا قرائت مجلسی باشه درستو همراه با صوت و لحن یا مقامات باشه یا به شکل ترتیلی باشه تمام و فی النهایه وقت آیات را خواندیم و قرارت کردیم خواستیم پایان ببریم چی وظیفه داریم؟ التصدیق صدق الله العلی و را. آره. راست گفت یا راست فرمود خداوند بلند مرتبه و بزرگ بدایتن در ابتدا نهایتا در انتها و این تصدیق هم قلبا و لسان باید برستش؟ آره. اینه براستی باید ما قلبی خدا را تصدیق کنیم. برستش؟ و براستی همینطور در زبان هم تصدیق کنیم. تمام تا اینجا؟ حالا حیف و بو سورت الکوثا. این سوره را چی باید کرد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آلا ما ببین دارم با لحن فارسی میخوانیم سور اله الله سر از فردا که وارد تجوید میشیم کم کم باید های خشت را هم تغییر دهیم انشاءالله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا عطاینا فصل ل لربک ونحر این شانیا که هو الاختر صدق الله العلی و خب آیات بعدی هم که هست انشالله شما آل چون ما و شما الحمدلله این مسائل رو درک میکنین لذا بعدن که خاندین با هم استعازه و بسمله و فین نهایت تصدیق بخانین کسایی که این کتاب رو تدریس میکنین در این که رسیدین این سوره رو به قرآن آموزان خشمگن که حفظ کنه و آیاتی که در اینجا هست مثل همه فتبارک الله و احسن الخالقین و آیات بعدی به این فرق فردی از قرآن آموزان دستور میدین که بخوانه اولش استعاذه کنه بعدش بسمله بعدش آیه در ایتها تصدیق کنه تا این تمره میشه سایی شد؟ این شاید و الدرس الخامس و الثلاثون حفظ سوره الفاتحه الفاتحة والاخلاص نحن حفظ بنا بحمد الله تعالى حاته اینست حاته سورته این این دو تا سوره را حفظ دارم دیگه آره انشاءالله و الدرس السادس و 30 حفظ دعای و اذکار صلاه. این دعا و ذکر های نماز رو هم باید حفظ کرد از کار جمع زیکر هست. در تیکه تیکه قسمت های نماز به هیچ زیکر استفاده میشه. آره؟ آه. حفظ داره حفظ دعا و ذکر های صلاات یعنی نماز نماز. درست آره. متوجه شدیم؟ حفظ دعای و ذکر صلاه، حفظ دعاء و ذکر های نماز. نماز، بله. نماز؟ بله سالات نماز. از کار و ذکر های آخوب کردی، از کار ذکر تیکه تیکه های نماز ذکر. مثلاً سبحان الله و الحمد و لا إله الله و الله و نمو ذکر هست جمع ذکر نماز آره برشت؟ فامیدین همگی؟ خیلی آره. دعا المطالعه دعا المطالعه برشت. دعای مطالعه کردن ما وقتی خواستیم کتاب بخوانیم این دعا را که بخوانیم مؤثر هست در ذهن سپردن مطالب کتاب شد؟ آره این دو آره هست کرد خب ما ترجمه شون رو هم خدمت شما می اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم خدایا من را از تاریکی های وهم خارج کن ظلمات تاریکی ها تاریکی های وهم وهم نادانی از تار از تاریکی های نادانی و توهم اخرج کن خارج کن انا من هذه اللهم خدایا اخرجنی خارج کن مرا من از ظلمات وهم تاریکی های وهم و نادانی آره آره آره درست شد؟ و و اکرمنی بنور الفهم و اکرمنی بنور الفهم، تصویر خود رو میتونی کات کنی، چون نه زیاد چمیشند. صدای خود رو هم، اگر کات کنی بهتره. و اکرمنی بنور الفهم و مرد حرام بدار. با, نور با واسطه نور فهم با, ف... با نور فهم مرا مکرم بداری بله بله با نور فهم مرا مکرم بداری بله نوری فهم درجه شدی؟ مرا مکررم بدار با نور فهم. اللهم افتح و لين عابواب رحمتت. بار خدايا بیگو شاید. بر من درهای رحمت را بار خدایا بی گوشای بی گو باز کن بی گوشای بر من بابهای رحمت را بابهای ابواب جام ابواب ها دروازه ها باب خودش دروازه هست رحمت را آره بار خدایا آبی برای من در واضحای رحمت ادران وانشور علینا این علومیک و ناشر کن ده بر ما خزینه ها خزینه رو خود میدانیم نه؟ خزانه ها خزانهای علم های داره. گسترش ده بر ما خزانهای علم های داره. بر رحمتی که یار حمل رحمین. خزانهای علم داره. علم علم بر که یار حمل همه این لطف ها رو که میکنی از روی رحمت خویش برایم انجام ده درسته دعای قشنگ است دیگه نیست؟ آره اینجا کدام؟ همیاخی دیگه هم؟ بی رحمتی که؟ بی رحمتی که یا ارحم الراحمیم و خاطر رحمتت به رحمتی که با خاطر رحمتت و خاطر رحمتت, رحمتت, رحمتت یا ای ارحم الراحمیم مهربانتر رحم کنند ترین رحم کنند ای رحم ترین رحم کنندگان متوجه شدید؟ به که یا ارحم ارحم یعنی مهربانترین رحمت ترین بخاطر رحمتت رحمتت ای, ای رحم کننده ترین رحم کنندگان آره برسو؟ الادان و ال اقام الادان و ال خب اینا رو خوب, ای خوب بلدیم الله اکبر ببینیم این قسمت ها که اینجا آمده برای سطح ما و شما نیست این برای سطح قرآن آموزان است دیگه برای قرآن آموزان خش اینا رو یاد بدین همیطوری الله اکبر با مرات مختلف مرتبه باشون اشحدو الله، اله، اله، اله، اله، اله، درست شد؟ اینه برای اونا یاد بدیم و یک نکتر اینجا باید اضافه کنیم خوش داشته باشین شما این کتاب در دست شما هست فیلن ها؟ توضیح المسایل هم شاید در خانه داشته باشه اگر آزان و اقامه و همچنین همدوسوره یا های دیگه نماز دار اگر تا هنوز هم اشتباه خاندیل که خیلی بد شده از این بابت اگر اشتباه بخانیل بدون شک فردای خیامت خودمان باشه ما معامله میکنه متوجه شدیم چی میگیم؟ چون ما متاسفانه متوجه هستیم یک عده نادرست میخوانند تلانند آره ولی نادرست میخوانند مثلا جایی که بگن علی ولی الله تقریبا میشه علی ولی الله تقریبا اینطوری میشه اینا نادرست نسته درست باید درست بخوانید و دیگرهایشان هم هم متوجه شدیم؟ آره ببینین به شما یک بار دیگه تکرار منکان اگه تا هنوز نادرس خوانده بودیم که بد بود ولی انزیبه بعدا اگر نادرس بخوانیم بدون شک خودش مو پاسخگو هستیم اذان اقامه کل هر دو تا در اینجا موجود هست ذکر دیگه دیگه نماز هم همینجا موجود هست می تونه اجازه ای دفعه خودمون چیزی که مثلا نادرس جور کنه بود آره آره می تونیم بگذاریم ممم یا که دفعه که چیزی هست خیلی خوب اینم حرف آه، الله اکبر و خب موسم الله اکبر میگیم دیگه وقف میکنیم اشحدو الله اله ایلا الله گرسی این تعبیر که ما داریم میخوانیم و طبعیش شما متوجه هستیم هنگام نماز اینطوره نمیخوانیم دیگه اشحدو الله اله ایلا الله اشحدو ان محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه اشحدو ان علی و ولی الله حقال سال حقال الفلاح، ببین حیقال سال حیقال الفلاح یکی هی در صلاح که هست که ت تبدیل به چه می شدد های این توجه داشته باشیم که هی از صلاح و الفلاح دو تا هی هست دو نوع هی درست شده یکیش هی درست یکیش هینا درست نرمه دیگه اینه متوجه باشیم یکی یا... دیگه این که وقتی صلاح و فلاح میگیم بعضی را شاید فقط بگه حی علی الصلاح حی علی الصلاح نادرسته حی علی الصلاح هیچی باید واضح بشه حی علی الفلاح نادرسته حی علی الفلاح دقت کردین؟ آل متوجه شدین؟ آره انشاءالله حی علی خیر العمل احسن حی علی خیر العمل الله اکبر لا اله الا الله قد قامت صلاح قد قامت صلاح نادرست دفع قد قامت صلاح هی هی شو باید واضح بشه همیدیم؟ نه آره اینجا چون صدای مور دیگه کس ممکن گوش کنه وی داری کنچه صدای موردی سعی شد شدالم در آذان و اقامه است صلا و فلاح نادرست باید صلاح و فلاح بشود درست؟ ما ان شاء الله ارکوع و سجود فی ذکر رکوع و سجود نحن نستطيع ان نذکر ما میتونیم همین ذکر را رو در روکو و سجود بگیم گونه که ذکر مخصوص هم داره سبحان الله سه مرتبه درست؟ آره منطقه اگر گفتیم سبحان الله این سه مرتبه که گفتیم وسطش وقف نکنیم خواه اینطوری نگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سعی شد؟ اونه میگیم اونه میتونیم بگیم آلا این برای یه که برای قرآن آموزای یاد میدازه چه هست اینه آورده درست چه؟ آره التشهد التشهد الحمدلله اشحد الا اله الا الله وحده لا شريك له اگر با باقف کردیم له خب؟ لا نه له و اشهد ان محمد صلاح الله عليه واضح عبده ورسوله رسوله اگر وقف کردیم ورسوله رسوله هیچ واضح بشه بعد صلوات و تقبل شفاعته و ارفع درجته واجب نیست اگر گفتیم بهتر هست مستحاد خب هم صلوات اسرحان بگیم اللهم صل على محمد و محمد محضو و خب این تشهدم تمام میرسیم در السلام سلام. السلام علیک ایها النبی و رحمتو نبی و رحمت الله و برکاتو برکاتو نه برکاتو صحیح شد نبی عمر توجیه بچین باشه ته باید بگردن آ نبیو آره، نبیویش ایش نبیو هم آره این نقطه خوب اشاره کردین نبی یو، نبی یو نه نبی, نبی, نبی, نبی یو نبی, نبی یو آره یا یا با به هم بخونیم، به تنهایی هم بخونیم نبی یو آل متوجه شدیم؟ ایم؟ آره. و بعد السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام عليكم و رحمت الله و برکاته درست شد برکاته نه برکاته هیچی واضح باشه تمام قنوتی که در اینجا آمده این قنوت خوبه خوب همه قنوتی که اینجا هست اگر این را حفظ نداریم همه قنوتی که ما شما می خانیم, دو روز خب اون که شما هم قابل توجه هست شما میگین که این در تحقیب بخوانیم؟ نیست جوزی از تحقیبات نماز را مسته میدونمی؟ جوز مشترکه چی دارم آها مشترک دیگه برای قنوطی که در اینجا آمده اگر این قنوط را بگیم خیلی عالی است. چون ما وقتی که اینه داشتیم می وش توجه کردیم که آیا واقعا این قنوط را بینویسیم یا نه چون که طوله نیست دیگه. دیدیم که این قنوط آمده در متونی ما و شما و در روایت. لذا این را نوشتیم، واقعا هم قنوطی که ما و شما با هم می یک آی کوتاه؟ ربنا آتنا خیلی عالی است این که خیلی عالی در زین اگر کسی فقط صلوات را با و عجل فرجه هم بخاند هم برای قنود کافی است وقتی که فرصت نبود می توانیم صلوات را با و عجل فرجه هم بگیم کافی است او خیلی خوب میشه. خب این آیه رو هم یک بار چون به پایانش رسیدن لا اله إلا الله الحليم الكريم. حليم دیگه حليم. لا اله <سؤال> إلا الله الحليم الكريم. لا اله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارابين سبع وموسيهنا ومبلغنا ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى